من کلام آخرین را بر زبان جاری کردم همچون خون بیمنطق قربانی بر مذبح یا همچون خون سیاوش خون هر روز آفتابی که هنوز بر است که هنوز دیری به طول به بنده است یا که خود هرگز بر نیاید. همچون تعهدی جوشان کلام آخرین را بر زبان جاری کردم و ایستادم تا تنینش باباد ترین قلعه خاک را بگشاید اسم اعظم آنچنان که حافظ گفت و کلام آخر آنچنان که من میگویم همچون با پس این نفس برهای معصوم بر سنگ بی اتوفت قربانگاه جاری شد و بوی خون بی در باد گذشت